برلین، آلمان، 15 فوریه 1987 مامان، مامان، به طرف دختر کم برگشتم. دیدم حراسان جیغ میکشد و مرا صدا میزند. سعی کردم از دست دو مردی که در مقابل در خانه مرا رو میکشیدند فرار کنم. صورت گریتا را دیدم. خیس عشق شده بود. پشت سرهم هم صدا میزد. دوباره سعی کردم از دستشان فرار کنم. آن مردانی که دستگیرم کرده بودند تر مرا گرفتند و خشونتشان بیشتر شد فاصله بین ما بیشتر و بیشتر میشد. یکی از مردانی که مرا گرفته بود دستش را پشت گردنم گذاشته بود و اجازه نمیداد دوباره به دخترکم نگاه کنم ربع قرن گذشته است و من هنوز هم هر روز با این کابوس از خواب برمیخیزم. صبح با زنگ صدای جیغ گریتا در گوشم بیدار می‌شوم همیشه در حالی بیدار می‌شوم که صدای زربان قلبم را می شنوم و عشق صورتم را خیس کرده است. در جستجوی دخترکم به رخت خواب دست میکشم. به این امید که او را در کنار خودم بیابم. دستم را به طرف میز کنار تختم دراز کردم و دفتر خاطراتم را برداشتم. قلم به دست گرفتم و شروع به نوشتن کردم. صبح بخیر عزیزم. صبحت بخیر و تولدت مبارک. امروز 25 ساله شدی؟ حتما خیلی هم زیبا شدی. چقدر مشتاق دیدنت هستم. مطمئنم به زودی همدیگر رو میبینیم. احساس میکنم امروز دیگه موفق میشم بیام پیشت. مطمئنم دیدار ما خیلی نزدیک شده عزیزم. امروز زودتر از همیشه بیدار شدم. <تصفح> برای سفر هر روزم آماده شدم. با عجله لباس پوشیدم. هدیه یه روز تولد دخترکم را برداشتم. هوا ابری بود. در تمام مسیر تا رسیدن به نقطه عبور دیوار برلین یعنی ایست بازرسی چارلی باران یک سره میبارید 25 سال بود که هر روز این مسیر را میرفتم و برمیگشتم حتی یک روز هم از این کار خسته نشدم چطور خسته یا ناامید شوم؟ در حالی که پشت آن دیوار بلند بخشی از وجودم را جا گذاشتم که هیچ چیزی جای خالیاش را برایم پر نمیکرد دیوار بزرگ از دور پیدا شد هر بار وقتی به دیوار نزدیک می شدم، نقشها و دستنوشته های سیاهی که طی سالها روی آن را رو پر کرده بود، در نظرم پررنگتر نمایان می شد. دیوار نوشته هایی که لزوم از بین بردن دیوار را فریاد می زدند. به یاد روزی افتادم که اولین بار از دیوار رد شدم. پشت آن سیمخاردار است که سربازان آلمان شرقی با عجلی آن را کشیدند. آن روز کسانی که مرا را که به جای آمدن از شرق به غرب، داشتم از غرب به شرق می رفتم، فکر می کردن حتما دیوانم و عقلم را از دست دادم. افراد کمی بودند که مثل من این مسیر را انتخاب کردند. اکثریت می دانستند که طرف غربی انتخاب بهتری است. آن طرف دیوار زشت و نفرت انگیز هیچ رنگی نداشت و توسط سربازانی سیاه بوش به سختی محافظت می شد. چشمم به اجسادی افتاد که تلاش کرده بودند، با آن سوی دیوار فرار کنند، اما موفق نشدند و روی زمین افتادند. فقط چند متر با رویایشان فاصله داشتند، اما با آن دست نیافتند. به آن تمثال جدایی چشم دوختن. با وجود تلاش هر روزه هم، هنوز نتوانستم از آن دیوار عبور کنم. دیواری که بین من و کسی که به شدت در آرزوی در آغوش گرفتنش بودم جدایی انداخته بود. هر قطعه این دیوار مرا به مبارزه می تلبد. هر قطعش وجودم را پر از اندوه می کند. میدانم دلش برای من نرم نمی شود و اجازه نمی دهد از آن عبور کنم و به آنهایی بپیوندم که به زور از من جدایشان کردند. قلبم هر لحظه فشرده تر می شود. به یاد روزی میافتم که چند افسر اشتازی مرا به مسئولان دولت شرق تحویل دادند. به آلمان غربی خوش اومدی هیلدا. نماینده وزارت خارجه آلمان غربی در نقطه اوبور دیوار با این حرفش به من خوش آمد گفته بود. پس گریتا کجاست؟ سب کجاست؟ اینها پاسخ من به او بود و تا امروز کسی به این سوالات من هیچ جوابی نداد تا دلم آرام گیرد. آهسته به طرف نقطه عبور پیش رفتم. سربازها با لبخندی گنگ از من استقبال کردن. من با اعتماد به نفس و مطمئن به طرف دفتر ایست بازرسی میرفتم در یک دستم هدیه گریتار را داشتم و در دست دیگرم کارت شناساییم را مقابل پنجره دفتر ایستادم و برگه ها را تحویل دادم. هیچ متوجه نبودم کسانی که مدارکم را تحویل می از دست من به سطوح آمده بودند. سرباز بلافاصله جوابم را داد. تعجب کردم. همان جواب همیشه گیش بود اما من انگار بار اول بود که این حرف را می شنیدم. نمیتونی بهت اجازه بدیم رد بشی هیلدا. هر روز دارم این رو بهت میگم. تو خوب میدونی که دولت آلمان شرقی اسم تو رو در لیست سیاه قرار داده. به عنوان یک انصر نامطلوب. تو نمیتونی بری اونجا. اما گریتا اونجاست. من دخترم رو میخوام. خواهش میکنم. من گریتا رو میخوام. متاسفم هیلدا. متاسفم. نمیتونی رد بشی. چند ساعت همانجا ماندم. ایست بازرسی دیگری رفتم تا دوباره تلاش کنم. به هر کدام از نقطه های عبور و ایست بازرسی ها که می رفتم، اجازه عبور نمی و تلاش هایم بیفایده بود. به خودم امیدواری می دادم که حتما روز بعد موفق خواهم شد. شاید بهتر بود قبل از برگشتن به خانه سریع هم به اداره امور مفقودین شرق می زدم. در دفتر دولتی با خوش کاملا تصنعی از من استقبال کردند. در آنجا با همون جواب های همیشه گی روبرو شدم. فهمیدم آنها فقط می‌خواهند هرچه زودتر آنها آنجا را ترک کنم و از همون راهی که آمده هم برگردم. غروب بود. در خانه نشسته بودم و ویولون قدیمی مقابلم قرار داشت. 25 سال بود که آهنگی با آن نواخته نشده بود. بلند شدم و از کمد لباس هایم پیراهنی برداشتم. سالها بود آن را نپوشیده بودم. پوشیدمش. برایم تنگ شده بود، به آینه نگاه کردم. با اینکه دیگر اندازم نبود اما هنوز زیبا بود. از دیدن زیبایی خودم خوشحال شدم. سالها بود که حتی فراموش کرده بودم یک زن هستم. دلم برای سپ تنگ شده بود. شروع شانه زدن موهایم کردم. موهای های داشت سفید می شد. زیر لب شروع به آواز خواندن کردم. احساس خوبی داشتم. این حس خوب زنانه تشفدم میکرد زیبایی امشب را تکمیل کنم. ویولونم را از کیف بیرون آوردم و آرام زربهی به آن زدم. بعد بلندش کردم و زیر چانه بردم. به شانه تکیه دادم و آهنگ ملایه می را شروع کردم. قطعه مشهوری را انتخاب کردم. خوب می دانستم این آهنگ به کجا ختم می شود. این همان قطعه معروفی بود که در آن آهنگ ویولون من و ساکسیفون سپ ترکیب می شد آنقدر به نواختن ویولون ادامه دادم تا آهنگ ساکسیفون محبوبم به گوشم برسد. احساس کردم دستهای های کمرم حلقه شده است. آهنگم را ملایم تر کردم و منتظر ماندم تا او آهنگش رو با من هماهنگ کند. پس چرا معطل میکرد؟ چرا شروع نمیکرد؟ ترسیدم، نواختن رو متوقف کردم. با لبخند برگشتم تا ببینم چرا معطلم نگه داشته و منتظرم گذاشته است. اما خودم را وسط آن اتاق، وسط آن اتاق ترسناک تنها یافتم به تخت خوابم رفتم دوباره دفتر خاطرات را برداشتم و نوشتم امروز هم نتونستم ببینمت عزیزم اما فردا بازم میام چیزی که الان میخوام اینه که خوابت رو ببینم خوابهای قشنگ نمیخوام دوباره با اون کابوس بیدار بشن قرص‌های خواب‌آوری که دکتر برام نوشته رو میخورم شاید این قرصها کمکم کنه خوابت رو ببینم تولدت مبارک گریتا جعبه قرس را باز کردم و دوتا از قرس ها را بل جعبه را سر جایش نگذاشتم. دوباره بازش کردم. جسم و روحم هم در هم شکسته بود. احساس سنگینی می کردم. مدت طولانی به قرس های درون جعبه نگاه کردم. تردید نکردم. هرچه درون آن بود خالی کردم و همه را با یک لیوان آب خوردم. امشب فقط یک چیز می اینکه خواب دخترکم را ببینم. بدون کابوس